بعضی برای اینکه قربی نیاد، بعضی از حقایق احکام اسلامی رو و واضحات احکام اسلامی رو عوض می کنند. قرآن برماید و انتوت اکثر من فی الارض عن سبیل الله ایت تبعون الا الظن و این هم اللای خرسون. دنبال رو به فکر رایج در دنیای جهل و خرافه نباید بود. فکر اسلامی رو باید پیدا کرد دنبال و او باید رفت ولی حالا یه عده‌ای بد بگن این هم یه مسئله است بنابراین مسئله اصلی رو باید پیدا کرد به نظر من مسئله اصلی یعنی یکی از مسائل اصلی مسئله خانه و خانواده است امنیت زن در محیط خانواده فرصت زن در محیط خانواده و خانداری برای بروز استعدادها مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه کسی که احل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه این اساس قضیه است